بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالا أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المؤلف رحمه الله باب جزاء الوالدين حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه هشتمین حدیث از حدیث صحیح کتاب ادالمفرد ام بخاری رحمه الله فرموده رسول الله صلی الله علیه و salam لا یجزی ولد والده لا یجزی ای لا یکافی یعنی هیچ فرزندی نمیتونه پاداش پدر و مادرش رو بده هیچ فرزندی نمیتونه پاداش پدرش رو بده نص این حدیث هیچ فرزندی نمیتونه پاداش پدرش رو بده حالا مادر همه میدونن الله واسه حملش که یاد شد در اون حدیث و زایمانش و شیردیش پدرم همین طور شأنش کمتر از مادر نیست فرزند نمیتونه پاداش پدرش رو بده در ازای اون پدریش مگر اینکه پدرش را برده ببینه مسلمان شده پدرش مشرک بوده تو جنگ اسیر شده و به عنوان برده یه جایی می‌بینه که فروخته میشه بردگی نوعی از هلاکت بدبختی ذلت خاریه این شخص اومده پدرش را از هلاکت و بدبختی نجات داده شخص مثل که پدرش رو زنده کرده به خاطر همین کسی مرده بوده زندهش کرده به خاطر همین اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد میکنه میگه که مگر اینکه یعنی اون پاداش بزرگ برای اون فرزند که سبب میشه بتونه زحمات پدرش را جبران بکنه اینی که پدرش را برده ببینه را آزاد بکنه حدیث بعدی. قال المؤلف رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبه قال حدثنا سعید بن أبي برده قال سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر و يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول إني لها بعيرها المذلل ان أذعرت ركابها لم أذعر ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها قال لا ولا بزفرت واحدة ثم طاف ابن عمر فأت المقام فصلى ركعتين ثم قال يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما أبو بوردم يكي عبد الله بن عمر را ديدم دار مكة وشخص يمني از يمان ومده بره تباف کرده مادرش ردوشش حمل کرده و این چنین میگه اینی لها بعیرها المذلل. المذلل منم شطور مادرم که زلیل شدم برای مادرم یعنی مادرم رو دوشم دارم احهم میکنم شطور شدم این اذعرات رکابها لم اذعر اگر اون شطور یک جای گریزش بدن که فرار بکنه میگه من شطوریم که اگر فراری من بدم در مقابل مادر سرم خمه لم اذعر فرار نمی کنم یعنی نهایت اطاعت و فرمون از مادر حرس این فرد در بر رو احسان به مادرش رو یاد میکنه چقدر حریص بوده در خوبی کردن به مادرش این چیرین هم در مقابل مادره مثل یک تو ذلیلم در مقابل مادره سپس در حال توافق مادرش و دوشش داره حم میکنه عبدالله ابن عمر رو میبینه دیگه ترانی و ترانی جزه ای توها آیا من با این کارم پاداشش رو دادم حقش رو ادا کردم؟ قال لا هرگز نه ولا به حتی اون یک نفسی که به هنگام زایمون زن نفس میکشه ما شهیق داریم و زفیر داریم شهیق نغره شیر وقتی که نفس رو از درونش به بیرون میده زفیر نفس رو در سینه حبس کردن فرو بردنه اون نفسی که مادر در سینش میبره به خاطر اینکه اون درد درد زایمون براش کمتر بشه و اون بچه به دنیا بیاد میگه حتی اون یک نفس مادرت را هم ادا نکرد حق اون یک نفس مادرت به هنگام زایمونم ادا نکرد حق یک نفس حق یک نفس از یمن بلند شده هزاران فرسخ اومده مادرشم روی دوشش هم کرده داره توافم میکنه حجش هم آورده این همه داره نفس نفس میزنه و دعا داره که من هم هستم بعد عبدالله ابن عمر میگه یک نفس زایمانش هم تو نتونسی حقش رو ادا بکنی خب اینجا چند تا مسئله داریم مسئله اول پاداش زن در مقابل زایمانش این شخص گفتم مادرش رو دوشش حمل کرده طواف داره میکنه حجش هم آورده این همه خرج و مخارج رو دوشش بوده یک نفس زایمون این همه پاداش جای یک اون نفس نیست چقدر اون مادر در مقابل اون زایمانش پاداش داره شما بگید به من چقدر از زنا و مادرها هستن که امتناع می‌ورزن از بچه آوردن اگر میدونستن اینقدر اجر و ثوابه پیشگیری میکردن ممانعت میکرده از اینکه که بچه دار بشن محرومن همون حدیثی که داریم که بحث قراریت میشه بعد بن عمر میگه چقدر از این قراریت و هست که ما از دست داریم چقدر محرومن مادران امروز از این همه قیرات اج این همه پاداش این همه راه و فرسخ مادرش رو دوشش این همه نفس نفس داره میزنه حجش هم آورده یک نفس اون مادرم نتونستی هم ما خودمون هم همسرانمون بر باشن از تهدید النسل بر باشن از پیشگیری و ممانعت از بچه دار شدن روزی به ما نیست الله متکفل شده به روزی چه جوانی که میخواد ازدواج بکنه الله متکفل شده ثلاث عهدنا على الله عونهم سیدنا که الله عهد بر خودش گذاشته کمکشون بکنه یکی شاب و جوانی که برای عفتش میخواد ازدواج بکنه عهد بر الله اطمینان داشته باش ای جوان اقدام کن برای ازدواج الله یاری میکنه عهد حل الله اگه صادق باشی با الله الله کمکت میکنه یاریت میکنه وقتی که توکل و اعتماد به الله داشتی اسبابشام بگیری بری دنبال کار و کاسبی چه در ازدواجش و چه در بچه آوردنت ولا تقتل اولادکم من املاق داریم در قران ولا تقتل اولادکم خشیت املاق از فقر در فقر واقعی بچه تو نکش روزی که میده الله از سر فقر پیشگیری نکن نگو تربیت سخت دشوار جامعه امید نه اسباب رو بگیر احتمال بر الله بکن، جلوگیری نکن، بعض الله اعانت و عون بخواه که الله یارید بکنه. نه اینکه دست بکشی بگیم نه چون ما نمیتونیم، نتوانیم، عاجزیم، یکلف الله نفس انلا وسعه، نه. تو در حد توانت، ز نکشیدی تو از حد توانت استفاده نکردی تو اصلا انجام ندادید بچه نیوردی که حد تکلیفت مشخص بشه میگه سپس عبدالله ابن عمر بعد از اینکه توابش تمام شد اومد پشت مقام ابراهیم دور نماز نمازسون بعد میگه یا ابن ابي موسى به او برده میگه ان این تو کفرانی ما امامهما اما این در رکعت سنت نمازی سنتی که انسان میکنه کفاره میشه از اون گناهانی که بین این دوتا انجام میشه یا بعد از اون نماز انجام میشه یعنی شما الان نماز نافله خوندید تا نافل بعدی کفاره گناه ما بعدتونه خب پس اون درس مهمی که از این حدیث میگیریم که ما هر چقدر خوبی بکنیم به والدین جای اون درد و تحمل مشاقی که والدین کشیدن برای زحمتی کشیدن برای تربیت ما و بزرگ کردن ما جای اون رو نخواهد گرفت نمیگیره بله حدیث بعدی قال المؤلف رحمه الله و حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن ابي عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبوه يبكيان فقال ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. بل ده هم من حديث صحاحي الصحيح، أز أدب المفرد فرد من ينظر صلى الله عليه وسلم كبيعت بده بريه هجرة كذا بيعت معاهدها سعده، فيمانه فيمان بري طاعات، بهجرته دونه دريم هجرت كالله بعدي بهشتده. ان الله اشترى من المؤمنين و واموالهم بان لهم الجنه از سرزمین شرک هجرت بکنن برای نصرت دین از مکه برن اون سرزمینی که درش مسلمان ها هستن که قدرت بگیرن و اسلام رو نصرت بدن هجرت بعدی هجرت نوع دیگر هجرت اعرابی بود که بعدن که مسلمان ها پیروز شدن اومدن ملحق شدن به مسلمان ها و شروع کردن به جنگیدن با آنها که فرق بین این هجرت و اون هجرت اون هجرت اولی برای کسانی که هنوز اسلام مستقر نشده بود اومدن با رسول الله صلی الله علیه و آله بیعت و پیمان دادن بر نصرت و سرزمین خودشون را رها کردن به خاطر دین این هجرته این هجرتی که الله وعده بهش داده در این آیت سوره توبه خب این صحابی اومده به خاطر این هجرت هجرتی که در مقابلش بهشته اومده پدر مادرش رو رنجونده. پدران گریه میکنن پدر مادرش رسول الله ص ناراحت میشه و به اون فرد میگه برو برگرد بخندون اونها رو پدر مادرت که اونها رو رنجوندی اونها رو بخندون همونطور که اونها را گریان گریاندید همونطور که سبب شدی گریه بکنن سبب شد که اونها بخندن و عزت راضی باشن خب اینجا در این حدیث اهمیت بر والدین داریم و اینکه از جهاد مؤکدترن اول حق والدین بعد جهاد حديث قال المؤلف رحمه الله وحدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديك قال حدثني موسى عن عن أبي حازم أن أبا مرة مولى أمهاني ابنة ابنة أبي طالب أخبره أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه بالعقيق فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتى تقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته يقول رحمك الله ربيتني صغيره فتقول يا بني وانت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيره قال موسى كان اسم ابي هريره عبد الله ابن عمرو دار اسم ابو هريره اختلاف است كه یک از اسم هاي كه گفته شده عبدالله است ابو هريره خاطر كه گربه رو دوست داشت اين لقب داده شده بود یا باهر بهش هم گفته می شدد. ابمهره دیگه که همراه ابهرهره بودم در یک رکبی از اون سرزمین که سرزمین ابهورره بود اون جایی که زادگاه ابورره میگه از اونجا رد شدی که اسمش عقیق الا عقیق در است به زمین گفته میشه که با بارندگی شدید و رودخانه ووسیلاب شصه میشه و اون مسیر صاف میشه هموار میشه. این عقیق گفته میشه. عقیق ها سرزمین هایی که عقیقا زیادن، مشهورترینش، عقیق در مدینه هست که میقادگاه اهل عراقه که سرزمین مبارکه که از اونجا احرام بسته میشه خب میگه همراه ابوهره بودیم در اون رک و در اون قافله وقتی که ابوهره وارد اون سرزمین شد اونجا یا اون زادگاهش با صدای بلند صدا زد علیکی سلام به مادرش سلام کرد علیکی سلام به مادرش سلام کرد علیکی سلام و رحمت الله و برکت یا امتا مادرم سلام بر تو رحمتك وبركاتك ما درش هم جواب ميد تقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته بعد ابو ربي مي رحمك يدع رحمك الله كما ربيتيني صغيره رحمك الله كما ربيتيني صغيره الله تربيه مز الرحب كنه همته كمره كي كوشك بودم بذر كدي فتقول يا بني ما درش جواب ميد يا بني وأنت ما تهم يعني تهم مش من رحمه الله يبيشي فجزاك الله خيرا الله جزائي خيرت بده وراضي عنك و عنق باشه كما بررتني كبيرة همون تركي من خوبي كذي در حالي كمان كوانسول و پيرا هم بزرگ شده رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرماية من صنع عليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثنة كسي بيت خوبي كرد و كسي كي بيت خوبي بيش بيكي جزاك الله خيرا در مقبل خوبيش الله جزای خیرت داده میگه این بزرگترین اون درود و اون ستایش را ادا کرده یعنی در حق اون شخصی که انجام داده دعا کردی در حقش اهمیت دعاست مؤمنه زندگیش دعاست چه عدسه میزنه چه کتابی را شروع میکنه چه نمازی را شروع میکنه زندگیش با دعا باشه زندگی مؤمن با دعا باشه همون سلام کردن دعاست السلام علیک حدیث بعدی قال المؤلف رحمه الله باب عقوق الوالدين حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجرير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا ألا وقول الزور مازال یکررها حتی قلت لیته سکد دوزه همین حدیث از حدیث صحیح در مفرد ما اونجا بر والدین داشتیم الان عقوق والدین سرپیچی نفرمانی در مقابل والدین پدر و مادر این حدیث در اصل بخاری هم هست رشت الله صلی الله علی و سلم فالا اونبه کن با اکبر الكبر الا حرف تنبیه از باب تذکر و یاد یادآوری گفته میشه بدانید از باب تذکر یادآوری گفته میشه الا انبهوکم اهو یا بیتون نگم یادآوری نکنم الا انبهوکم نبا خبره به اکبر الکبائر ایو شما یادآوری نکنم از بزرگترین گناهان سه بار تکرار میکنه رسول الله صلی الله علیه و حرف مهمی که میخواست تکرار بکنه تکرار میکرد مثلا یعنی سه بار بیتون بگم سه عمل کبیره ای که بخشودنی نیست آیا بهتون بگم سه عمل کبیره و بزرگی که بخشودنی نیست أكبر الكبار مزكرين كنهان كبيرة قالوا بلا يا رسول الله بلا يا رسول الله قال أبلي الإشراك بالله أبلي الشرك ان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ان الله لا يغفر أن يشرك به أبلي مزكرين زول مفتيم الله نبيه نبي أموره بعد الشرك مزكرين زول جنايات كية عقوق وعقوق الوالدين أبلي شرك دومي عقوق عقوق يعني كية عقوق یعنی سرپیچی، اذیت آزار، ظلم، ستم به پدر و مادر هر نوع عذیت و آزاری پدر و مادر آزار بدی برنجونی سبحان الله الان دوازده همین حدیث در بحث پدر و مادره بعد از پدر و مادر حالا در کنارش حقوق الله یاد داره میشه بعد والدین بعد میاد اهل خانواده شما پنجاه و اندی حدیث در ادب مفرد دارید از احادیث و سا ساعت توسیه به اهل و خانواده و پدر و مادر چقدر شر به کانون خانواده همیت داده و چرا همیت داده خواهد اومد بعدن خواهد اومد گفتم زیبایی دین اسلام اهمیت خوبی و نیکی و احسانه که ما با این کارمون دیگران را جذب بکنیم به دینمون دینمون درش احترامه، تقدیره، توقیره درسته زیباییه و بدون اگر احترام و تقدیر و توقیر پدر و مادر رو رعایت کردی فرزندانت فردا رعایت میکنن در حقت نکردی با والدینت سر مادرت و پدر نبوسیدی دستاشونو نبوسیدی فرزندان دستای تو نمیبوسن در تعاملت با پدر مادرت دقت کن فرزندت داره زب میکنه یاد میگیره عزت توقیر و احترام با عملت یادشون بده خب این گفتم شکوه و زیبایی دین اسلامه توقیر وقتی که رسول الله علیه از کوه می میومد بعد میگفت زملیونی زملیونی دثرونی دثرونی امون خدیجه رسول الله صلی الله علیه و آله گفت قال انك لا تصل الرحم از خویشو یاد کرد پدر مادر الله از دست داده بود خاطر همین امون خدیجه از سله رحمش یاد میکنه الا ما باقی از اعمال نیک رسول الله صلی الله علیه اینها اعمال نیکیه که اسلام را زیبا میسازه اسلام را زیبا میسازه اسلام را زیبا بسازیم با رفتار درست رفتار پسندیده وقل لعبادي يقول التي هي احسن نيك حرفه سخنه خوب باشا خوبترین احسن نه گو و قل عبادي يقول التي هي حسن نه هي احسن بهترین ها را بگيد لفظتون گفتارتون نيك آقا نه ماكي هلا فلان کجا زاده هستيم ما همي طوري بزرگ شديم نه انما بتعلم بالتعلم عقل و يادگيري قتو ياد بده میتونی یاد بگیری اون الفاظ تعریف تمجید احترام توقیر باید یاد بگیری و در تعاملت از اونها استفاده بکنی بس بزرگترین کبایر اولی شرک دوبی حقوق والده و جلسه و کان متکیع و الله علیه و وسلم تکیه داده بود تکیع واضح دیگه انسان کمرشو به پشتی بالشتی دیواری بیچسپنه و جلسه و نشست حیعتش عوض شد سبأرت أكيد مكون بعد إن جميشنه بعد ذيك تكيدة ذا بود يعني رأس مشنه وجلس وكان متكئ ألا وقول الزور ما زال يكرره هم شنار قوم ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور الا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور ما زال يكرره هم شنار رسول الله صلى الله عليه وسلم تكرار مكال حتى قلت ليته وسكت ای کاش رسول الله صلی الله علیه و توقف می‌کرد از بس که تکرار می‌کرد رسول الله صلی الله علیه و سلام. قول الزور چی که رسول الله اینقدر تکرار کرد قول الزور دروغه قول الزور قول باطله تهمته اتهامه شهادت بنا حق قول الزور شاید یک شخص در توحیدش مشکل نداشته باشه در احترام و توقیر والدنش مشکل نداشته باشه ولی در تعامل با خلق الله مشکل داشته باشه از بالا شروع شد اول حقوق الله توحید بزرگترین حقه و ضد اون توحید ظلم اونه و اونم شرک بعد از حقوق الله حقوق آدمیانه اولین حق رو والدین دارن که ضد برشون حقوقه بعد از والدین دیگر مسلمان ها که با اونها باید صادق باشیم ضد صدق قول زور کذبه تهمته حالا شما در نظر میگیرید از اون عالمش و اون جاهلش چقدر آلوده ان به قول زور عالمش عالمش قرار بر این نیست که عالم اشتباه نکنه پاش نه عالمش عالمش اشتباه میکنه وقتی که خصوص اختلاف در یک مسئله پیش میاد اتهامات صادر میشه حالا اون چیزی که رایجه بین علماء اتهام و توهمه زدن به هم دیگر به اینکه این درباریه اون درباریه این شیخ و مشایخ سلطانه درباره و اون به اون میگه این فلان شیخ درباریه اللهی میشنوی چه آدم تن آدم میلرزه علمای راسخی دیده با اونها نشست و برخاست داشته بعد یک طرفی که آلودگی فکری داره از یک شیخ یه چیزی شنیده میاد برچسب میزنه به اون عالم و مثلا من خودم یعنی اون علمایی که دیدم با اون علمایی که با شاگردنشون نشسته و اینقدر اتهام و تهمت بهشون زدن مثل البانی رحمها الله چقدر تهمت و اتهام بهش زدن به اینکه جاسوس اسرائیل و نمیدونم صهیونیسته چقدر بهش اتهام زدن این عالم ربانی که میاد این همه حدیث رسول الله میکنه صحیح از ضعیفش رو برای ما مشخص میکنه و خدمت میکنه به سنت رسول الله الله علیه و بعد یک شخص راحت این گفته زور و بهتان و تهمت از دهنش بیرو میاد این که جاسوس عامل بود این خودفروخته بود این درباری بود یا بنبازش یا ابن عثیمینش یا عبادش یا فوزانش راحت تهمت میزنه اینجا هست که رسول هستم میگم تکیه داده میشینه و هی تکرام قول, قول الزور وقتی که عالمش این توری در این لغزش میفته از ما به اولا جاهلش جاهل که دیگه بشمار در حق همسرش در حق پدرش در حق دوستش برادرش خواهرش، خالهش همهش اون دیگه قابل شمارش نیست خیلی از علمان اینچینین بهتانهای راحت بهشون زده میشه چه در باب اعتقاد که اتهامی که ون شخسی که اون چیزی درش نیست بهش نسبت داده میشه البانی مرجعیه راحت صد تو میدونی ارجا چیه اصلا تو خوندی ارجا چیه ارجاع از کجا اومده و چی هست این ارجا؟ نه راحت لبتر میکنه البانی مرجیه تو که نخوندی تو که اصلا کتاب اعتقاد رو نخوندی کتاب اصول و اعتقاد اهل سنت و جماعت لالکایی رو خوندی یا ابانه ابن بتر رو خوندی چی رو خوندی کدوم رو مطالعه کردی از کجا در آوردی کدوم بهت گفت چرا اون شیخ بهت گفت چرا فورا این تهمت ها را به اون عالم زدن چرا میزنن چرا از خود سوال بپرس چرا حالا میاد انشاءالله بحثش چرا به البانی میگن مرجعی چرا با البانی میگن درباری حالا البانی مثلا شیوخی که زندهن شیخ هم یکی از اون شیوخی که الان راحت فلان به شخص برچسب مدخلیه قبل از شیخ ربیه محمد امان بود. قبل از محمد امان شیخ ال بود. همه اینها قول زور و قول باطلی که به اونها نسبت دادن و ناروا گفتن زیاده از اون اقوالی که بهشون ناسازی که بهشون گفتن قولی که اونها متبنيش نبودن. مرجئ کسانی یعنی هنگ که میگن ایمان کمو زیاد نمیشه میخوای هر گناهی مرتکب شو کجای باني این چنین حرفی زده که ایمان کمو زیاد نمیشه و هر گناهی خاصی انجام بده. کجا ال باني حرفی گفته؟ ال باني چرا دارباریه؟ اس کجا جو این اتهام را میگه چون گفته که خروج برای حاکم نباید بشه باید انسان از حاکمش اتباع بکنه و حکام را تکفیر نمیکنه الله اکبر عدم تکفیر و عدم خروج این دلالت میده بر این که البانی درباریه اگر اینطوریه پس اولین کسی که باید متهم بشه رسول الله صلی الله علیه و سلم شو رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را از تکفیر من کرده و ما را به سمع طاعت دستور داده بیعت میگرفت عهد میگرفت س اطاعت بعددم خروج ال انتر و کوفرن بااح الله فيه برهان برهانی سریح واضح بر کفر و که آشکار اون رو داشته باشید. حالا این بحث من مف در نواقع اسلام گفتم اینجا بحث در بحث اتهامات قضاوت کردن روی دیگران راحته ولی حسابش سخته الواقول سور. ما در قول زور میفتیم، در بهتام میفتیم، در دروغ میفتیم مادامی که عالمش پاش میلغزه از باب اولا جهل پاش می لغزه. از این بابه که رسول الله صلی الله علیه و تأکیل می کنه "الا و قول الزور الا و قول الزور برحضر باشید از اینکه اون سخنتون اون حرفتون گفتارتون دروغ باشه کذب باشه صادق نباشه عالمانه نباشه و از ما در هوای نفس می افتیم. در هوای نفس اون هوای نفسمون نفس, نفس امارمون سبب میشه که ما به خسم خودمون یا به اون کسی که باش اختلاف نظر داریم اتهام وارد بکنیم خصوصا اونایی که عاطفیان خصوصا اونایی که عاطفیان احساساتیان با حماسه وارد این مسئله میشن میبینن شیخالوانی یک حرفی زده میگه در مقابل حاکم ظالم باید استواری بکنی باید خشنداری بکنی بعد به کامش این سخن خوش نمیشه و شروع میکنه به اتهام زدن و دنبال بهانه به گشتن برای رد کردن این سخنان پس اون مطالبی که در این حديثها سبحث شفاقات الطلاب شو؟ السحابية شفقت من يكون برسول الله صلى الله عليه وسلم يكوش رسول الله صلى الله توقف مكات حديث بعدين قال المؤلف رحمه الله باب لعن الله من لعن والديه حدثنا عمر بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل قال سئل علي هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفه ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من سرق منار الأرض لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا باب لعن الله من لعن والديه. لعنته الله بار اون کسی که پدر مادرش رو لعنت میکنه بجد کسی میگه پدر مادرش رو لعنت میکنه بله. چطور خواهد اومد؟ ابو الطفل میگوید که علی رضی الله عنه سوال شد. سئل علی رضی الله عنه. هل خصکم النبی صلی الله علیه وسلم بشی لم خص به ناس کافه؟ آ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم این چیزی با شما در میون گذاشته که با دیگر مسلمان در میون نگذاشته باشه؟ به با دیگران نگفته باشه؟ تعمیمش نداده باشه؟ عمومي ش نكر ده وش اللي خاص برايش ما فقط قفت بعشرة ودروات الصحيح مسلم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليه قال فغضب عليه رضي الله عنه خاشقجي مشه قال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليه شيء أن يكتم الناس هيش في خلاص صفة سر كتمان مكابياب ما خاص قرار بده در سري وكدي قراره أزوجش محروم بسازه غير أنه قد حدثني بكلمات أربعة شو جمله جملة الرسول صلى الله عليه وسلم بمن قفتن كين كلمات ما خص الرسول بشيء لم يخص به الناس الا ما في قرابها درين این شمشيرم این, این چهارتا چیز رو نوشتم گذاشتم توی این کاغذ ورقه ورقه رو در میاره اون ورقه ای که علی بن نبی طالب از رسول الله صلی الله علیه و سلم نوشته بود در این کاغذ برای خودش تو اون شمشیرش گذاشته بود این کلمات چهار تا کلمه بودن کلمات چهارتا چی بودن؟ وصیت به اینکه علی بن نبی طالب بعد از من خلیفه است والله این چنین چیزی در این صحیفه نبود والله الله دروغ أنك إن رب العلي بن طالب نسبت بده والله الله دروغ غُس علي طالب رضي الله عنه إن كانت برقر و دار مئره إنشانی چيز تشنیس موقخون ديم إنشانی چيز تشنبود علي بن أبي طالب إن برقر و دار مئره سحيف رو برقل. فإذا فيها مكتوب قد أبو طفل من دبيعش بخون عبليش. لعن الله من ذبح لغير الله لعنات بكنا كسي برأي غير الله زبحوكنا حيووني رب رأي غير الله بزني بز بحس عزيز عليه ما بيتوالب وخلافته بعد هذا شو فئاته بعد هذا رسول الله سامه هي كده ما زينانيس أبليش لعنته الله, لعنت الله بارك سكه زب مكونه قرواني مكونه حي را بري غير رسول الله بدوم لعن الله من سرق منار الأرض لعنته الله بارك سكه نشون يروي زمين را بدوزه زمينية مال قبیله مال شخصی مشخص کرده با سنگهایی که گذاشتن، نشونهی که گذاشتن، این برای که تعدی بکنه، اون سنگها رو میدوزده، بر میداره. این شخص ملعونه. سومی لعن الله من لعن والدی لعنت الله بر کسی که پدر مادرش رو لعنت بکنه. الا این را خواهیم داشت در احادیس بعدی که رسول الله سوال میشه چطور شخص پدر مادرش لعنت میکنه میگه که پدر مادر شخصی را لعنت میکنه و اونم اون دشنام اون لعنت را بهش برمیگردن و پدر مادرش لعنت میکنه اینو گفتم خواهد اومد و چهارمی هم لعن الله من آوا محدثا لعنت الله بر کسی که محدثی یا محدثی را چه به معنای اسم فاعل بگیریم و اسم مفعول حالا هر دو تا معناش خواهیم داشت را پناه بده محدثی محدث قاتلی دوزی را پناه بده که قصاص نشه و محدثی هر دوتا گفتم در حدیث وارده هم به معنای محدث اومده هم به معنی محدث محدث اون مبتدع کسی پناه بده مبتدع ازش دفاع بکنه سنگش را به سینه بزنه سنگش را به سینه بزنه گمراهه منحرفه اهل زیغه اصحاب یاران رسول را سب کرده دشنام داده که بارها به تکرارم گفتم مثالم زدم مثلا بنده خدا صاحب کتاب معالم و کتاب عدالت اجتماعی و از امثال سید قطب و محمد قطب و امثالش مودودی و تویی که مرد نیستی از صحابه و یاران دفاع بکنی لاقل پناه اینها نشو مروج فکر اینها نشو در سب و شتم اصحاب نمیتونی دفاع کنی؟ نده به این مسلمان بدبخت جاهل این کتاب و اون کتاب از این کتابایی که پر از سب اصحاب و یاران توشه بر اصحاب و یاران بر خلیفه رسوس عثمان امن عفان بر اینکه چه چپاول کرده از اموال بیت المال و نمیدونم بروسی دخترش این قد از بیت المال برداشته و غیر و تهمت به معاویه قول زور قول زور نه بر حاکمی نه بر فرد عادی، بل اون خلیفه راشد که جز عشره و عشره بالجنه هست که رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پا روی اوحود میذاره میگه اثبتی اوحود ثابت بمون اوحود نلرز که بر تو صدیق و دوتا شهید ایستادن ابو بکر و عمر و عثمان خبر از مجده از شهادتش را میده که به ناحق کشت میشه بعد این شخص میاد سنگ این گمراه را به سینه میزنه لحن الله آ و محدثه بر حضر نبر خواهشن. آلا خوبی داشته آلا ندیدونم این که این همه کتاب خوب نوشته این که مجاهدت کرده جهاد کرده علیه طاغوت ایستاده مکار به نمازش کاری به روزش، کار به خوبیهاش نداریم ما برای ما اصحاب و یاران مهمن. شمع و چراغ زندگی ما اونها بودن که به ما نقد کردن از این وحی رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما راضی نمیشیم این نور در منزل ما خاموش بشه این نور نبوتی که اینها بهمون رسوندن و سوختن به خاطرش سخمت کشیدن تلاش کردن رسوندن بعد بیاید شما براحتی اونها را ساقط بکنی و از اونها به بدی یاد بکنی نه والله رازی نمیشید این گفتم نمونه چون یاد شد بحث در بحث اتهام قول زور رب داره به اونجا نمونه ای از این قول زور بر اصحاب یاران چه اون کسانی که تهمت می‌زنند بر عمومین عایشه بر اون تهمتی که الله براعتش رو در قرآن نازل میکنه. و چون کسی که اصحاب یاران رسول الله صلی را به بدی یاد می‌کنه فرقی نداره گفتم این نمونه نمونه هاش زیاده از ایوا دادن و پناه دادن یک شخص گمراه، گمراهی در محراب مسجد نشسته حادیث دروغ بر اساساً داره نسبت میده. میخونه در کتاب فضائل عمر رو باز کرده. تو هم نشستی نمیگی بهش ساکت شو. لاقل نمیگی ساکت شو نمیری بیرون. نشستی اون جمعشون رو با اون نشستن تایید کردی. لعن الله من آو و از نوع پناه، نوع تایید، نوعی از نصرته. الله لعنت بکنه کسی که مبتدی گمراهی را نصرت بده. یاری بده حتی ولو با نشسان از یاری دادن تعییده تو نمیتونی انکار بکنی لاغر بلند شو برو بیرون نمیتونه انکار کنی لاقلب رو بیرون ولی راضی نشو به اینکه حرفی به رسول الله صلی الله علیه وسلم به دروغ نسبت داده بشه حرفی نمیگم کلمه حرفی راضی نشو مقام نبوت و شرفش را حفظ کن در قلب خودت جایگاه مقام رسول الله صلی الله مقام اندکی نبود عزت رسول در قلبت رو حفظ کن نظر کسیبیات به دروغ به رسول الله صلی اللہ علیہ ناروایی بزنه حدیث دروغین و جعلی را بهش نسبت بده نظر این شرفه این مقام وحی که بر نازل شده را حفظ کن رسول الله صلی اللہ علیہ مبلغ وحی الهی بود مصطفا بود الله استفاش کرده بود انتخابش کرده بود اختیارش کرده بود از بین خلاق برای وحیش و بر رسول الله, الله, الله دروغ بر الله و من اظلم ممن افترى على الله كذبا تجزوا ببولتر از دروغ بستن بر الله دروغ بر رسول الله دروغ بر الله هست که او فرستاده و الله علی محمد و علی محمد